کتاب داستان و افسانه‌های مردم پاکستان نویسنده کومال لکمن مترجم، مهداد مهدویان ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده نازنین زهر و صپی و بیرسینگ روزی روزگاری توی یه شهر باستانی به اسم سند حاکمی به اسم کالیپسینگ حکومت حکومت میکرد. اون دختر زیبایی داشت به اسم سونداری. یه دختر خوشقلب مهربون و فهمیده. روزی از روزها سونداری با دوستاش توی چمنزاری گردش میکردن. از غذا شاهزادهی به اسم بیرسینگ از کشور همسایه اونها به شکار رفته بود و موقعی برگشتن راهش رو گم کرده بود. اون خسته و کوفته خودش رو به چمنزاه رسوند و زیر سایه درختی استراحت می کرد. ناگهان صدای آواز دلنشینی به گوشش رسید که از اونجا خیلی هم دور نبود. شاهزاده با وجود خستگی زیاد بلند شد و به طرف صدا رفت از لابلای ها نگاه کرد دستهای دختر رو دید که هم می میکردند شاهزاده برای اینکه بهتر بتونه گوش کنه پشت بوتهها پنهون شد بعد از اینکه همسورایی دخترها تموم شد اونها شروع کردند به صحبت در مورد شخصیت همسر شد یکی از اونها گفت همسر آینده من باید همیشه فرمان بردار من باشه هر که زندگی مردها بدون زن ناقصه ولی خب اونها با زن رفتار درستی نمیکنن شاهزاده خانوم سونداری هم گفت: آرزوی من ازدواج با شاهزاده بیرسینگه اما اون باید بدونه که اگه با من درست رفتار نکنه نشونش میدم که چطور یه زن درست مثل یه مرد دلیره اون باید با من درست رفتار کنه و به من احترام بذاره. بیرسینگ همه این صحبت ها رو شنید. بعد از پشت بوته‌ها مضطربانه زل زد تا بتونه سونداری رو بهتر ببینه و در حالی که از زیبایی اون مبهوت شده بود با خودش عهد کرد و قسم خورد که یه روزی با این دختر ازدواج کنه. شاهزاده بعد از برگشتن از شکار به دیدار پدرش رفت و به پدرش گفت که دلش میخواد با دختر کالیب یعنی سونداری ازدواج کنه چون هر دو طایفه از لحاظ مقام و مغزلت با هم یک سان بودن پدر با این ازدواج موافقت کرد و بعد یه پیک به سمت کالیب فرستاد تا از دخترش خاستگاری کنه کالیپسینگ بدون ای تردید موافقت کرد و تاریخی برای انجام مراسم عقد و ازدواج انتخاب شد و بعد جشن مفصلی به مبارکی این ازدواج بهراه افتاد سونداری به عنوان عروس به قصر بیرسینگ رفت ولی داماد از اون دوری میکرد سونداری که از این کار شوهرش متعجب شده بود احساس خودش رو بروز نمیداد و اصلا نشون نمیداد که مثلا قلبش شکسته یا احساساتش چریح دار شده. چند ماهی به همین ترتیب گذشت و زن و شوهر با هم مثل دوتا تا غریبه بودند. یه روز صبح یکی از خدمتکارای صندوقداری به اون گفت: "شوهره خانم، امروز عید و قرار مراسم باشکوهی توی معبد انجام بشه. اگه برای تماشا برین به شما خوش میگذره سونداری موافقت کرد و آمادهای رفتن به مراسم شد البته موقع حضور شاهزاده توی معبد اقدامات امنیتی کاملا رعایت میشد و هیچ کس حق ورود به اونجا رو نداشت وقتی بیرسینگ شنید که همسرش به معب رفته اون هم بدون اطلاع از اینکه ورود آقایم به معب ممنوعه به طرف اونجا راه افتاد بعد آروم و بیسر و صدا داخل شد و پوشه سر سونداری نشست. اون میتونست صدای رازونی از سونداری با خدای خودش رو بشنوه که میگفت جون خواهش میکنم اون نور سلامت نگهدار و تمام شادی های روی زمین رو به اون بده. وقتی سونداری یک ها سرش رو برگردوند شوهرش رو دید که پشت سرش نشسته و با سرزنش رو کنایه میگه فکر میکنی اینطوری میتونی منو شفته خودت کنی؟ پس اون لافایی که توی باغ پدرت در مورد شجاعت و قدرت زنان میزدی چی شد؟ سونداری خیلی تعجب کرد. با این حال معدبانه به اون تذکر داد که گوش دادن به حرف دیگران موقع دعا کردن کار درستی نیست. بیرسینگ لبخنی زد و گفت من فقط زمانی تو رو زن خودم میدونم که حرفهایی رو که اون روز زدی ثابت کنی. بعد شاهز از محبت بیرون رفت. سونداری فهمید که تصمیم شوهرش تغییر و برای آشتی با اون راهی به جز نشون دادن شجاعتش نداره. با این افکار معبد رو به قصد قصر ترک کرد. سونداری ازمش رو جذب کرده بود تا قلب شوهرش رو تصاحب کنه. اون میدونست که با موندن توی قصر این کار امکان پذیر نیست. برای همین تصمیم گرفت قصر رو در حال کتاب بون دندون مسلح بود ترک کنه سونداری حلقه ای رو که پدرش به اون داده بود به خدمتکارش سپرد تا اون رو پیش پدرش ببره و از اون بخواد که الماسی رو که روی خلقه هست و شل شده رو تعمیر کنه خدمتکار به قصر کالیپسینگ رفت و خلق و پیغام دختر رو به پاتشگاه رسوند حلقه رو از خدمتکار گرفت و فوراً فهمید که برای دخترش مشکلی پیش اومده. کار رو برگردوند. بعد الماس روی حلقه رو بیرون آورد. زیر الماس یه تیکه کاغذ بود. سونداری نوشته بود وقتی که دوتا توتی توی یه قفص هم اختلاف پیدا کنن بهتر اون دوتا توی یه قفص نمونن. من میخوام از اینجا فرار کنم. لطفاً یه از به تون رو و دست لباس مردانه بران بفرستید. کالیب سینک که نمیدونست این چیزها رو چطوری به دست دخترش برسونه، فکر کرد. در آخر تصمیم گرفت که تونلی از داخل کوههای مرزی به قصر دخترش احداث کنه. بعد از یک ماه کار سخت، تونل آماده شد. بعد پادشاه از راه تونل چیزهایی را که دختر خواسته بود، اون رسوند سونداری هم سواره و با لباس مردونه از راه همون تونل از قصر فرار کرد اون به خدمت کارش تذکر داده بود که این فرار رو به کسی نگه و به صورت راز فقط بین خودشون نگه داره یک هفته بعد یه مرد جوان و خوشقیافه به درباره بیرسینگ اومد و بعد از عرض سلام و تعارفات معمول به پادشاه گفت من از طایفه سلطنتی راچپوت هستم راتان راچپوت برای پیدا کردن یک کار مناسب توی قصر شما به اینجا آمدم لطفا از اینکه اسم پدرم رو فاش نمی کنم من رو ببخشید هر نوع کاری که بخواید انجام میدم شاه که از جسارت این مرد جوان خوشش اومده بود مقامی مناسب و در خور نجیب زاده ها به اون داد و راتان به خاطر این کار از شاه تشکر کرد. راتان کم کم توجه و محبت شاه رو با سوارکاری عالی و شجاعتش به دست آورد. پادشاه بیرسینگ هم کم کم با راتان دوست شد و به اون اعتماد کرد و با اون مثل یه رفیق رفتار کرد. و یه روز بعد از اینکه کاملاً به اون اعتماد پیدا کرد در مورد زنش سونداری و اینکه چطوری اون رو ترک کرده حرف زد. راتانراش راش بود لبخندی زد و گفت آقای من آقای نجیب زاده با همسرش اینطوری رفتار میکنه؟ بیرسین جواب داد من واقعا اون رو از تر قلبم دوست دارم. فقط میخواستم آزمایش کنم و ببینم که شجاعتش رو که لاف میزنه داره یا نه؟ روزگار گذشت. تا اینکه یه روزی خبر دادند که شیر نری نزدیک شهر دیده شده. شکارچی‌های ماهر رو برای به انداختن شیر به اونجا فرستادند. اونها خیلی سعی کردند که این حیوان وحشی رو بکشن، ولی هیچ کدوم نتونستند. همه مردم وحشت کردند و پادشاه از این واس خیلی ناراحت شد. اون در این مورد باراتان راج بود مشورت کرد و از اون راه نجات را پرسید. راتان راشپوت گفت خودم میرم و جنازه شیر رو براتون میارم. اون یه آدم آهنی درست شبیه یه مرد ساخت و اون رو نزدیک لونه شیر گذاشت. نیمه شب بود که حیوان برای شکار بیرون اومد و در حالی که آدم آهنی رو به جای انسان اشتباه گرفته بود به اون حمله کرد و روی اون پرید. تا شیر این کار رو کرد راتان سینک از قفرت اون استفاده کرد و از روی درختی که قبلا مخفی شده بود پایین پرید و با کمک شمشیر سر شیر رو برید. اون موقع لاشه حیوان رو با خودش به خونه آورد و اون رو توی گوشه ای از اتاقش گذاشت و بعد رفت و خوابید. صبح روز بعد پادشاه بیرسینگ از حال احوال دوستش پرسید. به اون گفتند که توی اتاقش خوابیده. راتان بود که صداهایی از بیرون شنید فوری برای خوشامدگویی شاه از اتاق بیرون رفت. پادشاه از شجاعت بی اون خوشحال شد و برای این کارش نشون افتخاری به اون داد. بعد از گذشتن چندین ماه ناگهان یه پادشاه مغرور به قلمرو و بیرسینگ حمله کرد. بیرسینگ که غافلگیر شده بود توی جنگ شکست خورد و اسیر شد. توی اون گیرو دار راتان راش بود ماموریتی داشت و توی شهر نبود. وقتی خبر رو شنید بلا فاصله برای کمک به قلمرو رو به بیرسینگ برگشت. اون سپاهی رو از طریق تونلی که کالیپسینگ احداث کرده بود به داخل قصر برد و اونها رو به دو گروه تقسیم کرد. به یک گروه دستور داد که توی زمان مشخص به دروازه شهر حمله کنن و خودش در حالی که فرماندهی گروه دوم رو داشت از راه تونل به قصر حمله کرد و دشمن را از پا درآورد. به همین صورت شهر به سادگی آزاد شد و راتان راشپوت اربابش رو از چنگال بیر رحم دشمن نجات داد. بیرسینگ هم با اشک و دعا از دوست عزیزش تشکر کرد. راتان راش بود چند روزی غیبت داشت. علت اون هم ازدواج یکی از نزدیکانش بود چند روزی گذشت ولی راتان برنگشت بیرسینگ به شدت ناراحت شد و گروهی رو برای پیدا کردن اون به منطقه اعزام کرد یه روز یکی از مامورای قصر به بیرسینگ اطلاع داد که راتان راچبوت رو در حال بازدید از قصر دیده. بیرسینگ مشکوک شد و با خودش گفت آخه چه رابطه ای ممکنه بین راتان راج بود و زن من وجود داشته باشه؟ چطوری راه مخفی ورود به شهر رو بلد بود؟ و مرتبا این سوال ها توی ذهنش می و بالاخره با عصبانیت شمشیرش رو کشید و به طرف قصر سونداری رفت. سونداری برای خوش آمد بیرون اومد ولی بیرسینگ دیگه طاقتش تموم شده بود. سر اون فریاد کشید. بگو ببینم راتان راش بود کجاست؟ ولی سونداری گفت من او رو ندیدم. بیرسینگ دوباره داد زد یا بگو اون کجاست یا اینکه با همین تمشیر تیکه تیکت میکنم. سونداری لبخنی زد و گفت هیچ مرگی برای من بهتر از کشته شدن توسط تو نیست. ولی قبل از اینکه من رو بکشی این نگاه نزدیک به صورتم بنداز این صورت صورت دوستت راتان راش بود رو به یادت نمیاره؟ بیرسینگ نگاهی دقیق به صورت سونداری انداخت. فهمید که اون همون راتان راش بوده. بعد روی پاهای زنش افتاد و تقاضای بخشش کرد. سونداری با زیرکی گفت حالا دیگه باید قبول کنی که من با عمل ثابت کردم که یه زن هم میتونه به اندازه یه مرد شجاع باشه. بیرسینگ بعد از شنیدن حرف های زنش دوباره از اون تغاظهی بخشش کرد و از اون به بعد شوهری وفادار برای اون باقی موند و تمام محبتش رو به اون تقدیم کرد. کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افثانه ای نشانی کانال تلگرامی تی مهران دوستیتی نقطه ام ای سلاش دی نشانی وبلاگ ما ام بی ال او جی اف ای <موسیقی> کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد بوستانی